اینجا رسیده بودیم که سهراب رستن بعد از جنگ تنبتن مفصلی بازی استادن و هر کدوم به نیروی طرف حمله بردن و رستم فکر کرد که مبادا بلایی به سر کاووس بیاد در حتی حمله سهراب بر میگرده و به او میگوید که چرا حمله کردی به, دش... به ایرانیان سهراب هم میگه اول تو حمله کردی به تورانیان بعد من حمله کردم و به هر حال جدا میشن از هم و وعده میگذارن که فردو ستپح بیاند و با هم جنگ بکن برفتند و رونگ هوا تیره گشت ز سهراب گردون همی خیره گشت تو گفتی ز جنگش سرشت آسمان نیاساید از تاقتن یک زمان شب تیره آمد سوی لشکرش میان سوده از بند و آهن برش به هومان چنین گفت که امروز هور برآمد جهان کرد پر و شور هور خورشیده شما را چه کردان سوار دلیر که یال یلان داشت واهنگ شیر به لشکر چه کرد و به بازو چه کرد که او بود همزور من در نوار به دو گفت هومان که فرمان شاه چنان بود کزی در نجم سپاه یه یکی مرد پرخاشجوی به دین لشکر گشن به روی تو گفتی مستی کنون خواسته است اگر رزم با یک تن آراسته است اگر گرب یا یاب چنین گفت سهراب کوزین سپاه نکرد از دلیران کسی را تباه از ایرانیان من بسی کشتم زمین را به خون چون گلاغشته. کنون روز فردا و رزم بزرگ پدید آید از میش یک باره گرگ به شب جام می باید آراستن به باید به می غمز دل کاستن اوزان روی رستن به لشکر رسید سخون راند با گیب و گفت و شنید که امروز سهراب جنگ آزمای چگونه به جنگ اندر آورد پای این گفت با پهلوان گردگیر که از گونه هرگز ندیدیم نیو بیامد دمان تا به قلب سپاه ز لشکر بر توس شد کینهخواه که او بود بر زین و نیزه بدست چو گرگین فرود آمد او برنشست برنشست یعنی سوار اسب شد عمودی شتابان بزد برش ز نیرو بیفتاد ترگ از سرش تابید با او بتابید روی. یعنی توست تاب جنگ و سهراب رو نداشت رو برگردون رفتکن. نتابید با او بتابید روی شدند از دلیران بسی جنگ، جوی گردان کسی مایه او نداشت. جز از پیلتن پایه او نداشت. هم آین پیشین نگهد داشتیم سپاهی بر او ساده بگماشتیم. سواری نشد پیش او یک تنه همین تاخت از قلب تا میمنه خب پرستم از اینکه یه چنین حمله ای برد سهراب و مقدار زیادی سربازان ایران رو تباه کرده ناراحت میشه غمی گشت رستم ز گفتار او برای بر شاه روی چو کاووس کی پهلوان را بدید بر خیش نزدیک جایش بگی سهراب رستم زبان بر گشاد ز بالا و برزش همی کرد یاد که کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی و گردی ندید کودک نارسید یعنی بچه‌ای که بالغ نشودی رسیدن بلوغ دقیقاً به معنی رسیدن نارسید یعنی نابالغ به بالا ستاره پسایت همی تنش را زمین که کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی و گردی ندید نارسید به معنی بالغ نشده است رسیدن دقیقا به معنی بلوغه بازو و رانش زران هیون همانا که دارد ستبری فزون به گرز و به تیغ و به تیر و کمند سهرگونه ای آزمود این چند به فرجام گفتم که من پیش از این بسی گرد را برگرفتم زین گرفتم دوال کمربند اوی بی افشاردم سخت پیوند اوی همی خواستم کش زین برکنم چو دیگر کسانش به خاک کنم گر از باد جنبان شود کوه خار به جنبید زین بر آن نام دار کوه خار یعنی کوه خارا اینجا حکیم به ضرورت شیر مخفف کرده کوه خارا از باد جنبان بشه او هم سر جنبید چوفردابی به دشت نبرد به کستی همی بایدم چاره کرد کستی اصلا اسم است که بر طبق آداب و رسوم و مراسم خاص باید زردشتیان وقتی که بالک میشن شرعن به کمر ببندن و نخهای معین از پار رنگهای معین و ترتیبات و جزئیات که بافند و این رو آماده میکنن که وقتی بچه پونزده سال شد به او بدن و این رو ببندن به کمر و چون در کشتی گرفتن همیشه کمربند رو می گیرن این است که اینجا کستی معنی کمره و احتمالا شاید همین کلمه کشتی هم که الان هست به همون معنی کستیه و کستی گرفتن یعنی کمربند همگر گرفتن و زور و هر حال نسخه خالقی که مبتنیست بر نسخهای قدیم اینجا کستی داره نکشتی بکوشم ندانم که پیروز کیست ببینیم تا رای یزدان به چیست است، پیروزی و دستگاه همو آفریننده ی حور ما بدو گفت کاووس یزدان پاک تن بدسگالان در آرد بخار من امشب به پیش جهان آفرین بمالم رخ خیشتن بر زمین کند تازه این بار کام تو را برارت به خورشید نام تو را به دو گفت رستم که با فر شاه بر همه کامه نیک ها به لشکرگه خیش بنها روی پرندیش جان و سرشکینه جو ملازم فرمود که لشکر رستم با اینکه جز سپاه ایرانیانه یکمی سواس رستم میره در لشگرگاه خودش زواره بیامد خلیده روان برادر رستم که امروز چون رفت بر پهلوان احوال میپرسه که چه گذشت از او خوردنی خواست رستم نخوست پسانگه از او خوردنی خواست رستم پسانگه از اندیشگان دل بشوست چون این ران پیش برادر سخن که بیدار دل باش فستی سستی مکن اینجا سفارش لازم رو به زواره میکنه که اگر من فردا در جنگ رفتم و شکست خوردم تو چه بکن و لشکر رو چطور بردار برو و در زابل که رسیدی چه بکن تمام سفارش میکنه. به شبگیر شبگیر یعنی صبح زود سهرگاه به شبگیر چون من به آوردگاه روم پیش آن ترک ناورد همی باش بر پیش پرده سراغ چو خورشید تابان بر آمد زجای گریدون که پیروز باشم به جنگ بدان دشت کین بر نسازم درنگ بیاور سپاه و درفش مرا همان ساز و زرین کفش مرا وگر خود دگرگونه گردد سخون یعنی من شکست بخورم تو زاری مساز و نجندی مکن مباشید یک تن بدین رزمگاه دیگه فوراً سپاه برد پرو مباشید یک تن بدین رزمگاه مسازید جستن سوی رزم راه سراسر سوی زاولستان شوید در به نزدیک دستان شوید یعنی زال تو خورسند گردان دل مادرم چون این ران گردند چرخ از برم بگویش که دل را در این قم مبند مشو جافتان دانز مرگم نژند. که کس در جهان جاودانه نماند زگردون مرا خود بهانه نماند بسی دیو و شیر و نهنگ و پلنگ تبه شد به چنگم پنگام جنگ بسی باره دز که کردیم پست نیاورد کس دست من زیر دست در مرگ آن کس بکوبد که پای به اسپندر آرد به جنبت جای میگه کسی که سوار اسب میشه و را میفته یعنی برای جنگ در حقیقت دافتالب مرگ هم هست یعنی جانش رو کف دستش گذاشته بنابراین من سال هاست که در مرگ رو میکوبم و خب امروز مرگ به سراغم آمده اگر سال گشتی فزون از هزار همین بود راه و همین بود کار چو خورسند گردد به دستان بگوی دستان پدرشه میگه وقتی مادرم راضی شد به زال بگو که از شاه گیتی مبرتاب روی، یعنی رو تو بر نگردون. اگر جنگ سازد تو سستی مکن چنان رو که رانند از این در سخون همه مرگ را ایم پیر و جوان بگیتی نماند کسی جا آفتم. پس از این بحث جنگ دوم سهراب تا نیمه شب از سهراب و پهلوانی های او سخن گفته میشه و بعد دیگه صبح میان برای جنگ. ذ شب نیم گفتار سهراب بود، دیگر نیمه آرامش و خواب بود. چو خورشید تابان به گسترد، فر سیهزاغ پران پر بیانداخت، پر تهمتن بپوشید ببر بیان نشست از بر اژدهای زیان. بیامد بدان دشت آوردگاه نهاده به سربرز آهن کلاه. همه تلخی از بحر بیشی ببد مبادا که با آز خیشی بود. اینجا فردوسی کلام خودشه میگه حرث است تمع است و بیشی است افزونطلبی است که تلخی به بار میره. اوزان روی سهراب با انجمن همی میگسارید با روزن به هومان چون این گفت که این مرد که با من همی گرددن در نبرد ز بالای من نیست بالاش کم به درون دل ندارد دو جم برو کتف و یالش همانند من تو گفتی نگارنده برزد رسن ز پای و رکیبش همی مهر من به جمبت. به شر ما ورد چهره من نشانهای مادر بیابم همین به دل نیز لختی بتابم همین گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده بگیتی گیتی کم است، نباید که من با پدر جنگ جوی شوم خیره روی درآیم آیم به روی ما... نباید که من با پدر جنگ جوی شوم خیره روگندر آرام به روگ این نوایت یعنی موادع اما سهراب اینجا میگوید که من کار می میکنم که این رستم شکل شکل منه نشانه های مادر رو میبینم اینن به من چه باحت داره موادع که من برم رو بر رو با پدرم و با او جنگ بکنم اما ماموریت هومان این است که از اول افراسی ها بهشون گفته که شما وظیفت اون اینه که نگذارید سهراب پدرش بشناسه و حتما به این جنگ کشیده بشه این است که دو گفت هومان که در کارزار رسیده است رستم به من چند بار شنیدم که در جنگ مازندران چه کردان دلاور به گرزگران بدین رخش ماند همین رخش اوی ولی که ندارد پی و بخش اوی میگه نه این رستم نیست کلاسش سهراب هم که جوان و بی تجربه به قول حکیم کودک نارسید همه رو دارای باطن صافی و تمیز و با حسن نیت خیال میکنه و فکر میکنه خیقها او هستن در خدمت او هستن و اگر هومان میگه این رستم نیست راست میگه و همین دلیل تسلیم میشه و فکر خودش رو تعقیب نمیکنه بپوشید صحراق خفتان رزم سرش پرز رزم و دلش پرز بزم بی آمد خروشان بدان دشت جنگ به چنگندرون گرزه گاورنگ ز رستم بپرسید خندان لب تو گفتی که با او به هم بود شب که شب چون بودت روز چون خواستی ز پیکار دل بر چه آراستی ز دور کن ببر و شمشیر کین بزن جنگ و بیداد را بر زمین بیا تا نشینیم هر دو به هم به می تازه داریم روی دو به پیش جهاندار پیمان کنیم دل از جنگ جستن پشیمان کنیم بمان تا کسی دیگر آوید برس تو با من بساز و بیارای بست دل من همی بر تو مهر آورد همی آب شرمم هم به چهره آورد همانا که داریز نیرم نجاد کنی پیش من گوهر یاد مگر پور دستان سام یلی دستان سام یعنی دستان پسر سام که همون ظالم مگر پور دستان سام یلی گذین بر رستم زاولی این بار دومه که سهرا به سراحت از پدرش سوال میکنه که شاید تو رستمی اینجا یه قدری احساس خودش رو هم بروز میده میگه من تو رو دوست دارم تو با من جنگ نکن من از تو شرمم میاد و جنگ و بیداد رو بزن به زمین بیا بشینیم با هم به بعض و کسی دیگری بیاد به جنگ برای که من خیال میکنم تو از اجاد نریمانی پسر دستانی رستمی ولی رستم باز خودشو با اون راه نمیزنه اینکه میگوید که بیشی تلخی میاره و آز همینه بدو گفت رستم که اینام جوی نبودیم هرگز بدین گفته گوی ز کستی گرفتم سخن بود دوش نگیرم تری به تو زین در مکوش من کودکم گر تو هستی جوان به کستی کمر بستم میان. بکوشیمو و فرجام کاران بود، که فرمان و راگ جهانبان بود. بسی گشتم در فراز و نشیب نیم مرد دستان و بند و به بدو گفت سهراب بینید بعد از اون سخنان است، یک چنین جواب خشن سربالایی پسندیده نیست دیگه بدو گفت سهراب که از مرد پیر نباشد سخون زین نشان دلپذیر مرا آرزو بود که بر بسترت برایت به هنگام هوش از برت هوش یه معنیش مرگه میگه من آرزو داشتم که تو در بستر بمیری کسی که از تو ماند ستودان کند ستودان یعنی تخمه است که ایرانیان باستان مردگان خودشونو اونجا میذاشتن کسی که از تو ماند ستودان کند به برد روان تن به زندان کند اگر هوش تو زیر دست من است به فرمان یزدان بیازیم دست میگه اما اگه مرگ تو به دست منه و اصرار میکنی حالا جنگ میکنی به نا همین بود چون انواع استلاح ها رو آزموده بودن و فایده ای نکرده بود قرار بود که کشتی بگیرن از اسپان جنگی فرود آمدند حشیبار با گبر و خود آمدند ببستند بر سنگ اسب نبرد برفتند هر دو سران پرزگر چو شیران به کستی براوی ایختند تنها خوی و خون همی ریختند بزد دست سهراب چون پیل مست براو از پای و بنها پست زد رو زمین به کردار شیری که بر گور نر زند دست و گورندر آوید به سر نشست از بر سینه پیلتن، پر از خاک، چنگال و روی و دهن یکی خنجری آبگون برکشید اینجا آبگون آب تشبیه میکردن خنجر یا کارد وسیله برنده حتی شمشیر بسیار بسیار سگغلی شده درخشان رو می کردند به آب در صفا و در درخشندگی و در داستان سمک ایار آمده که میگه سمک کار چون قطره آب برکشید یعنی بسیار تیز یکی خنجری آبگون برکشید همی خواست از تن سرش را برید نگه کرد رستم به آواز گفت که این راز باید گشاد از نه دگرگونه تر باشد آیین ما جزین باشد آرایش دین ما کسی به کستی نبرد آورد سر مهتری زیر گرد آورد نخستین که پشتش نهد بر زمین نبرد سرش گرچه باشد بکین اگر بار دیگرش زیر آورد به افکندنش نام را آورد روا باشد در سر, جد سر کند زو جدا روا باشد در سر کند زو جدا چون این بود تا بود آین ما اینجا باید عرض کنم که ملاحظه می‌فرمایید که به محض اینکه میگه که رستم و سهراب با هم گلاویز شدن سهراب او رو گرفت، رستم رو گرفت و زد بر زمین. در نسخه‌های دیگه باز کسانی که بیت‌ها الحاق میکردن به شاهنامه فردوسی، به نظرشون آمده است که این نبرد زیادی ساده است. این است که بیت‌های متعددی ساختند و به این صحنه اضافه کردند. مثلا فرض فرمایید که توی یکی از این نسخه ها هست بپیچیده دو گرد یک گرد و کوهند گفتی به هم برده سر نه این چیره بر آن و نه آن بر این ستوه آمده زیر ایشان زمین چون یک لخت بگذشت و شد روز گرم زدل برده مهر و رخ شسته شرم بپرید صحراب چون تیل مست چون شیر دمنده بیازید دست بعد میگه که رستم آورد و زده. امثال اینا خیلی هست در شاهنامه در این چاپ آقای خالقی در هاشیه اینا آمده است ولی مطلب همینه نسخه های معتبرم همینطوری که بنده ارز کردم و رستم به این چاره گفتیم چاره کلمه خوبی نیست در شاهنامه بحنی هیله و مک رو ارز کنم که راه گریز پیدا کردن و اینا به کار میره با این حال فردوسی همین لغت رو برای این کار رستم کار میبره میفرماید که بدین چاره از چنگ آن اجده ها همی خواست کایت ز کشتن رها دلیر و جوان سر به گفتار پیر بداد و ببودان سخن جایگیر فکر کرد جوان بود دیگه بچه بود ساده بود فکر کرد که رستم درست میگه و حرفش به دل اون نشست رها کرد از او دست و آمد به دشت به دشتی که بر پیشش آهو گذشت همی کرد نخشی رو یادش نبود از آن کس که با او نبرداز مود همی دیر شد باز هومان چو گرد بیامد بپرسید از او و از نبرد میگه مدتی رفت چه کرد و اینا تا هومان به او رسید و گفت با جنگ چطور شد به هومان گفتان کجا رفته بود سخان هرچه رستن به تو گفته بود ماجرا شهر به هومان به دو گفت هومان گرد ای جوان به سیری رسیدی همان آز جان گفت جونت سیر شدی دریخین پر و برز بالای تو رکیب دراز و یلی پای تو هزبری که آورده بودی به دام رها کردی از دام و شد کار خان نگه کن که از این بیهوده کار کرد چه آرد به پیشت به دیگر نبرد ببین این کار بیوده ای که کردی بعد چه بازی بر پیدا میکنه در نبرده بعد بگفت و دل از جان او برگرفت میگه هومان سهراب رو مرده فرض کرد بعد از این ماجرا. براندو همی ماند اندر شگیف بلشگرگه خیشمنهاد روی به خشم و پر از غم، دل از کار او. ناراحت بود هومان بر اینکه که میدونست که رستم مردی نیست که دوبار به دام بیاد نکو گفت از این روی آموزگار که دشمن مدار ارچ چه خورده است خار این رو فردوسی از قول آموزگار نقل میکنه و همین است که بعدها مرتب تکرار شده سعدی میگه دانی که چه گفت زال با رستم گرد دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. همین است اینجا باید عرض بکنم که باز ماجرای بعدی دوباره جنگ است و میرسیم بهش و گفتگو میکنیم ازش ولی باز در بخش الحاقی شاهنامه اینجا آمدن برای اینکه توجیح بکنن که چگونه ممکن است که پهلوانی یه بار با یه پهلوان دیگه کشتی بگیره مبارزه بکنه و به آسانی مغلوب بشه و زمین بخوره و بعد بار دیگر که این کشتی تکرار میشه به او چیره بشه و او رو به زمین بزنه برای که این رو توجیح بکنن آمادن گفتن که رستم زور بسیار زیادی داشت به نحوی که وقتی روی سنگ خاره هم راه میرفت تا زانوش تو اون سنگ فرو میرفت و ناچار بود به زحمت این پاشو بکشه بیرون بعد اون پاش میآمد باز میرفت فرو و به این در ترتیب ناراحت بود خیلی استقاسه کرد و از درگاه خدا خواست که یه مقداری از این زور پهلوانی او رو بگیره که ناراحت نباشی و بعد که از سهراب مغلوب شد آمد و مناجات کرد و رفت به درگاه خدا و گفت خدایا اون امونتی رو زور من رو که گرفتی بازپست بده که حریف خیلی پر زوره. من این بیت ها رو میخونم گو اینکه جزء اصلی شاهنامه نیست شنیدم که رستم ز آغاز کار چنان یافت نیروز پروردگار که گر سنگ را او به سر بر شدی همی هر دو پایش به دو در شدی از آن زور پیوسته رنجور بود دل او از آن آرزو دور بود بنالید بر کردگار جهان به زاری همی آرزو کرد آن که لختی ز زورش ستانت همی به برفتن به رهبر توانت همی برانسان که از پاک یزدان از بخواست ز نیروی آن کوه بکر بکاست چو بازان چنان کار پیش آمدش دل از بیم سهراب ریش آمدش به یزدان بنالید که کردگار بدین کار این بنده را باش یار همان زور خواهم که از آغاز کار مرادادی ای پاک بروردگار به داد یزدان چنان کش بخواست بی در تن چنان کشپکاست این برای توجیه این است که چگونه شده که در دو نبرد پیاپی پی، یک بار رستم شکست میخوره و یک بار دیگه پیروز میشه به هر حال حکیم میفرماد که چون رستم ز چنگوی آزاد گشت به سان یکی تیغ پولاد گشت خرامان بشد سوی آب روان چنان چون شده باز یا روان مثل کسی که مرده باشه دوباره روان خودشو پیدا کنه شده یعنی رفته یعنی کسی که از دنیا رفته خرامان بشد سوی آب روان چنانچون شده باز یا قد روان به خرداب و روی و سروتن بشست به پیش جهان آفرین شد نخوز همی خواست پیروزی و دستگاه دیگه اینجا اون قسته ها رو تکرار نمی میگه فقط از خداوند پیروزی خواست همی خواست پیروزی و دستگاه نبود آگه از بخش خورشید و ماه که چون رفت خواهد سپهر از برش بخواهد رو بودن کلا هست سرش آب چون شد به جای نبرد پراندیشه بودش دل و روی زرد همی تاخ سهراب چون پیل مست کمندی به بازو کمانی به دست گرازان و برگور نعرزنان سمندش جهان و جهان راکنان جهان اول یعنی جهنده میگه اسبش جهنده بود و دنیا رو جهان رو میکند کمی گشت و رستن به محضه ای که این دلیری و زوراوری سهراب رو دید باز ناراحت شد و چهره شکست رو در برابر خودش دید کمی گشت و زو ماند اندر شگفت ز پیکارش اندازه ها برگرفت جو صحرا باز آمد او را بدید ز باد جوانی دلش بردمید جوون بوده و متکیه به خودش چون این گفت که رست از چنگشی، جدا مندی از زخم شی که دلی به این ترتیب بر میگردن دو حریف پیش هم بار دوم کشتی رو آغاز مید زور دست تو گفتی سپهر بلندش ببست غمی گشت رستم بیازی چنگ گرفتش برای یال جنگی پلنگ پشت دلیر و جوان زمان بی آمد نموندش توان زمانه ارز کردن بارها که زمان به عجله میگه وقتی که عجل آمد دیگه او تاب نداشت توان نداشت زدش بر زمین بر به کردار شیر، بدانست کو کوهم نماند به زیر. سبک تیغ تیز از میان بر کشید، شیر بیدار دل بردارید. پهلوشو چاک کرد. بپیچید از آن پس یکی آه کرد. زنیک و بد اندیشه کوتاه به دو گفت کین بر من از من رسید. زمان را به دست تو دادم کلی میگه من خودم کلید عجل خودمون دست تو دادم توزین بیگناهی که این گوش پشت مرا برکشید و به زودی بکشت به بازی بکویند همسال من به عبرندر آمد چونین یال من نشان داد مادر مرا از پدر پدرز مهرندر آمد روانم به سر همی جستمش تا ببینم شروع چون این جان بدادم به دیدار او کنون گر تو در آب ماهی شدی وگر چون شبن در سیاهی شدی گر یعنی ویا به همین دلیلم بسیاری از نسخه های معمولی شاهنامه ویا گذاشتن به جای وگر کنون گر تو در آب ماهی شدی وگر چون شبن در سیاهی شدی و چون ستاره شوی بر سپه ببر ریز روی زمین پاک مهر بخواهد هم از تو پدر کین من چو داند که خاک است بالین من از این نامداران گردنکشان کسی هم برت سوگ رستم نشان که سهراب کشتست و افکنده خار تو را خواست کردن همی خواست یکی از نکات بسیار بسیار قمنگیزه این داستان همینه که سهراب آمده با اون امید آرزو برای دیدار پدر ناراحت از اینکه که با داد در جنگ با پدر رو به رو بشیم بارها از پدر میپرسه که بیا خودتو معرفی کن دل من به تو میره اینا همه به جای خود و رستم این کار نمیکنه نمی بخت بعد در کمین بوده و بالاخره در جنگ سهراب رو میکشه ولی سهراب قبل از مردن یه امید داره اون امید این است که من بیهوده کشته نمیشم اینجا و پدر من رستمه جهان پهلوان ایرانه یک کسی بالاخره خبر به رستم خواهد برد که پسر تو رو کشتن و سهراب کشته شده بنابراین پدر من کین من رو از کشنده من خواهد خواست ولی این امید آخری سهرابم متاسفانه پیش از مرگ مبدل و میشه یعنی ناچار آگاه میشه به این حقیقت تلخ که اون کسی که پهلوی او رو دریده همون پدری بوده است که از مهر او روانش به سر آمده و این همه در جستجوی او بوده چو بشنید رستم سرش خیجه گشت جهان پیش چشمندرش تیره گشت بشت هوش و هو توشش ز مغز و زتن بیفتاد چون سر وین در چمن بپرسید از آن پس که آمد به هوش بدو گفت با ناله و با خروش که اکنون چه داریز رستم نشان که کم باد نامش نامشد گردن کشان بدو گفتر ایدون که رستم تویی بکشتی مرا خیر بر بدخویی ایدون یعنی چنین اگر این است که رستم تویی از بدخویی منو کشتی به دو دریدون که رستم تویی بکشتی مراخیره بر بدخویی زهرگونهی بودمت رهنمای نجنبید یک بار مهرد جا. کنون بند بکشای از این جوشنم برهنه نگه کن تن روشنم چو برخواست آوای پوس از درم بیامد پر از خون درخ مادرم همی جانش از رفتن من بخست یکی مهره بر بازوی من ببست مرا گفت که از پدر یادگار بدار و ببین تا که یاید به کار کنون کارگر شد که بیکار گشت یه وقتی به کار آمد که دیگه به کار نمیاد پسر پیش چشم پدر خار گشت چو بگشاد خفتان و آن مهردید همه جامعه پهلوی بردرید همی گفت که کشته بر دست من دلی رست توده بر انجمن. همی ریخت خون و همی کند موی سرش پرز خاک و پر از آب رو به دو گفت سهراب که این بدتری به آب دو دیده نباید گریست از این خیشتن خستن اکنون چه سود چون این بود و این بودنی کار بود بودنی بود یعنی قضا بر او جاری شده بود و چاره ای جز اتفاق دادنش وجود نداشت. چه خورشید تابان ز گنبد بگشت خورشید تابان ز گمبت مقصود گنبد افلاکه و بگشت یعنی از حد ظهر از نصف و نهار دورتر رفت یعنی وقتی ظهر گذشت چو خورشید تابان ز گنبد بگشت همتن نیامد به لشکر ز دشت دیدن تا ظهر شده نیمه هنوز ز لشکر بیامد هوشیوار بیست که تا اندر آورگه کار چیست دو اس بندران دشت بر پای بود پر از گرد و رستم تگرجای بود گوه پیلتن را چو بر پشت زین ندیدند گوه را بر پشت زین ندیدند گردان بر کین چنان شد گمان گمانشان که او کشته شد سر نامداران همه گشته شد به کابوس کی تاختند آگهی که تخت مهی شد زیر رستم توهی زلشکر بر آمد سراسر خروش بر آمد زمانه یکایک به جوش بفرمود کابوس تا بوغ و کوست دمیدند و آمد بهدار توز از آن پس به لشگر چونین گفت شاه که در هیونی سوی رزمگاه به تا کار سهراب چیست که بر شهر ایران به باید گریست شهر ایران یعنی کشور ایران اگر کشته شد رستم جنگجوی از ایران که یارت شدن پیش او به انبوه زخمی به باید زدن بر این رزم گهبر نباید بودن میگه باید همگی سرش بریزیم شاید سهراب را از بین ببریم چون آشوب برخواستان انجامن چون این گفت سهراب با پیلتن که اکنون که روز من اندر گذشت همه کار ترکان دگرگونه گشت همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ ترکان نراند سپاه که ایشان ز بحر مرا جنگ سوی مرز ایران نهادن روی باز اینجا سهراب باطن پاک خودش رو نشون میده با اینکه در حقیقت هومان سردار توران باعث مرگ او شده ولی او که خبر نداره و نمیدونه که اینا به چه قصد آمدن اما در لحظه مرگ به رستم سفارش میکنه که این سواران توران به پشتیبانی من و به همراه من آمدن به این جنگ بنابراین طوری بکن که سپاه رو به طرف اونها نرانند و اونها را آزار ندن و اونها برگردن برند به کار خود که ایشان ز بحر مرا جنگ جوی سوی مرز ایران نهادند روی بسی روز را داده بودم نوید بسی کرده بودم ز هر در امید میگه خیلی روز خوش بهشون نوید داده بودم امید بهشون داده بودم که پیروز میشیم چنین میکنیم چنان میکنیم نباید که بینند رنجی به راه مکن جز نیکی در ایشان نگاه رستم هم قبول بود نشست از بر رخش رستم چو گرد پر از خون روح و لب پر از باد سرد بیامد به پیش سپه با خروش دل از کرده خیش با درد و جوش چو دیدند ایرانیان روی اوی همه برنهادند بر خاک روی ستایش گرفتند بر کردگار که او زنده باز آمد از کارزا چوزانگونه دیدند پر خاک سر دریده او دریده بر او جامه خسته جگر به پرسش گرفتند کی این كار چیست ترا دل بر این گونه از بهره کی رستم جواب میده بگفتان شگفتی که خود کرده بود گرامی تر خود بیازرده بود همه برگرفتند با او خروش نماندان زمان با سپهدار توش چونین گفت با سرفرازان که من دل دارم امروز نهو شدن شما جنگ ترکان مجویید کس همین بد که من کردم امروز بس زواره بیامد بر پیلتن دریده همه جامه زواره بیامد بر پیلتن دریده همه جامعه بر فرستاد نزدیک هومان پیام که شمشیر کین ماند اندر نیام نگهدار آن لشگر اکنون تویی نگه کن به دیشان نگر نغ نوی تو با او برو طالب رود آب مکن بر کسی بر برفتن شتاب پیغام رو به وسیله زواره فرستاد برای هومان که نگهدار لشکر توران تویی و به برادرش گفت که طالب رود آبینا رو ببر مشایعت کن که کسی آزارشون نکنه چون برگشت از آن جاگه پهلوان سپاه ایران رو برگتوند و ترتیب کار داد دوباره برگشت پیش, پیش پسرش چون برگشت از آن جاگه پهلوان بی آمد بر پور خست روان بزرگان برفتند با او به هم چو توس و چو گودرز و چون گسته هم همه لشگر از بهر آن ارجمند زبان برگشادند یک سرزه بند که درمان این کار یزدان کند مگر کین سخن بر تو آسان کند یکی دشنه گرفت رستن به دست که از تن ببرد سر خیش پست بزرگان به دویندر آبی ایختند سمجگان همی خون فرو ریختند به گفت گودرز که اکنون چه سود که از روی گیتی براری تو دود تو گر کنی صد گزن چه آسانی آید بدین ارجمن. اگر زن که ماند به گیتی زمان بماند تو بیرنج با او بمان باز زمان به معنی عجله میگه که اگر هنوز عمر او در دنیا باقی باشه باقی خواهد ماند تو هم بدون رنجی با او بمان اگر این جهان این جوان رفتنیست گیتی نگه کن که جاوید کیست هیچکس کس جاویدیست چه همه پیش مرگ سری زیر تاج و سری زیر تک چو آیدش هنگام بیرون کشند میگه مرگ وقتی هنگام کسی وقتی کسی رسید او رو از این دنیا میبره ندانیم لشکر همی چون کشند دراز است راهش اگر کوتاه است، پراکندگانی، مگر همراه است. اگرها اینجا اگرها هر دو معنی یا، یاست اینجا اگرها هر دو معنی یاست نمیدونیم راهش درازه یا کوتاهه نمیدونیم که ما پراکندهیم یا همراهیم مجموعیم ز سپه بد بیندوه کیست همین خیشتن را به باید گریست به گودرز گفتان زمان پهلوان کزیدر در بروزود روچند روان پیا من سوی کاووس بر بگویش که را چه آمد به سر به دشنه جگرگاه پور دلیر دریدم که رستم ممانا دیج گرت هیچ یاد است کردار من یکی رنج کندل دل به تیمار من از آن نوشدارو که در گنج توست کجا خستگان را کند تن درست به نزدیک من با یکی جام می سزت گر فرستی همکنون به پی مگر کو به بخت تو بهتر شود چو من پیش تخت تو کهتر شود اینجا بنده نکته ای رو بد عرض بکنم و او این است که نوشدارو یعنی دارویی که ضد مرگه این نوش نه یعنی داروی ضد مرگ هوش به معنی مرگ و ذکرش در شاهنامه در همین داستان رستم و سهراب آمده است و گفتند که نوش دارو در خزانه که کابوس بود و خواهیم دید که کابوس هم روی اون گمان بعد و روی فکر ناسازی که همیشه داشته دریغ میکنه از فرستادن نوش دارو برای سهراب و ضرب المثل میشه در زبان فارسی نوشداروی بعد از مرگ سهراب اما این نوشدارو چیه؟ و اصلا چنین دارویی مگه ممکنه وجود داشته باشه و اصلا از کجا آمده این طبیعی است که چنین داروی هرگز وجود نداشته که کسی که شکمشو دریدن نمیدونم کبدشو پاره کردن تمام زخم کاری مثلا منجرب مرگ خورده باشه یه دارویی به او بدن که او بخوره و این درست بشه چنین چیزی نمیشه اما وقتی سابقه این رو بگردیم به مطالب بسیار جالبی برمیخوریم یه محقق فرانسوی هست به نام جورج دومزیل که تازگی در سن بالا نزدیک 90 سالگی مرد و این کارش تطبیق اسطوره های اقوام مختلف بوده و از جمله اسطوره های هندی و ایرانی و کتابهای متعدد نوشته آدم خیلی نامدار سرشناسی است در یکی از کتابهاش تحقیقی داره در درباره کاووس این کاووس که پادشاه بسیار مقتدر است در ایران و جز شاهان حماسی است و سرگذشت بسیار طولانی داره و صحنه های بسیار گوناگون از او هست در هماسه معروف هندی مها یه یک شخصی هست با همین اسم کوی اوسن همین کاووسه منتها او برهمنه برهمن است بسیار مقتدر و با قدرت بسیار بسیار زیاد که با یک دسته از پهلوانان محابهرته این همراهه و در نتیجه قدرت ای که داره یکی از کاراش این است که به آسانی میتوانه هر کسی رو که زخم بسیار سخت خورده باشه یا حتی اگر مرده باشه میتوانه او رو زنده بکنه در نتیجه کسی که یعنی اون گروهی از پهلوانان که کاووس با اونا همراهه این پرحمن با اونا همراهه میتونن مرتب مرده هاشونو و زخمی هاشونو زنده بکنند و باز بفرستن به میدان جنگ در حالی که گروه مخالف نمیتونن این کار بکنن میان و تدبیری میاندیشن و یک، یکی از پسران برحمن اون طرف رو میفرستند به خدمت پلوی این کاووس. و او خیلی حسن خدمت به جا میاره و بسیار زحمت میکشه و صمیمیت نشون میده در نزد کاوس و کاووس تمام دانش‌هایی که داشته به این پسر این پهلوان هم یاد میده و بعد به ترتیب خاصی که الان بنده فرصت بحث در جزئیاتشو ندارم به ترتیب خاصی این فن زنده کردن مردگان و شفا دادن زخمی ها رو هم از او یاد میگیره و اون برمیگرده به اردوگاه مخالف پهلوانان مخالف چون وابستهی به اون گروه بوده و در نتیجه تعادل غوا بین این دو دسته برقرار میشه حالا قصد من یاد کردن ماجراهای محاوهرته نیست که در این میانه بعد دختر این کاووس برحمن دل میبازه به اون پسر که شاگرد کاووس بوده و پسر هم اون دختر رو نمیگیره برای اینکه که نگاه از سر شهوت کردن به دختر استاد اینا گناه بزرگ است و من هرگز نمیکنم و گرفتاری های بسیار و حوادث بسیار مفصل اتفاق میافته که اینجا جای بحثش نیست علت اینکه بنده این مطلب و اینجا مطرح کردم این است که اون قدرت کابوس برحمن که در ماهابارتا هست و به مراتب وسیع از این خاصیت که به این کاووس نسبت دادن اون نیرو نیروی زنده کردن مردگان و نیروی شفا دادن زخم بسیار سخت این تبدیل شده است در نزد کاووس پادشاه به دارویی به نام نوش دارو که این در خزانه کاووس هست ما هیچ نشونه در زم هیچ گونه نشان شفا دادن بیماری، زخمی یا زنده کردن مرده یا چیزی رو در شاهنامه بینیم و مهمترین حادثه همین است که وقتی که رستم پیغام میده به وسیله گودرز به کاووس یه قدری از این نوشدارو با یه جام می بفرست برای پسر من کاووس از این خودداری میکنه یعنی باز نقش نوشدارو روشن نمیشه در داستانهای ایرانی هیچ وقت دیده نشده که به وسیله این دارو کسی از زخم هوناکی شفا پیدا کرده باشه فقط اسمش آمدید و این نشان همین است که این در هند بسیار توسعه بیشتری داشته اینجا کم کم به این صورت در آمده و این دارو رو فقط اسمش آوردن ولی هیچ عملی هم ازش در داستان های ما نیامده. به هر حال بعد جریان نوش دارو قصه کاووس هم به این ترتیب در میاد که بنده الان به عرض میرسد. حکیم می که بی آمد سپه بعد یعنی گودرس به کردار باد، به کاووس یکسر پیامش بداد. به گفت کابوس کس پیلتن کرا بیشتر آب از این انجمن. آب به معنی آبروست. میگه هیچ کسی بیش از رستم که در این انجمن آبرو نداره. شود پشت رستم به به دو گفت کاووس بیامد آمد به باد به کردار بعد به کاووس یک سر پیامش بده. اما عمل کاووس خوب نیست نگوید که به دو گفت کاووس یعنی به گودرز گفت کس پیلتن کرا بیشتر آب از این انجامه کی بیشتر از رستم در اینجا آب رو داره اما شود پشت رستم به نیرو تراب حلا که ورد بی گمان مر مرا میگه اگر این کارو بکنم رستم نیرومندتر منتر میشه و بدون شک مرو از بین خواهد برد اگر یک زمان زو به من بد رسد نسازیم پاداش او به بد کجا گن جدو در جهان فراخ بدان فر و آن برز و آن یال و شاخ کجا باشد او پیش تختم به پای کجا راندو زیر پر همار شنیدی که او گفت کاووس کیست شهریار است پستوس کیست ملاحظه می که اون زشتی کار خودش رو و اون حرکتی که رستم آمده برای مقابله با یک چنین پهلوانی او رو نمی و اینکه دستور داده که برند گیب و رستم رو زنده بردار بکنن او رو فراموش میکنه ولی اون چه رستم گفته کاملا به یادش مونده که شنیدی گفت کاووس چیه؟ کیه؟ توس کیه؟ بنابراین اگر حالا پشتش قوی تر بشه دیگه هرگز ما رو به چیزی نمیگیره و این گمان درست نیست بارها نشون داده شده بنده در تگ این داستان هم عرض کردم که پهلوانان هیچ وقت نظری به تخت و تاج شاهی نداشتن بر طبق اصولی که در ایران باستان رایج بوده و اگر شاهی رو هم از تخت برکنار کنار به قصد این نبود است که خودشون جای او رو بگیرن بلکه کس دیگری رو هم از تبار شاهان به شاهی بر اما خب کابوسه و اخلاقش همینیست که عرض کردم گودرز دست خالی بر می کرده بشنید گودرز برگشت زود بر رستم آمد به کردار دود به دو گفت خوی بد شهریار است جنگی همیشه به بار تو را رفت باید به نزدیک اوی درفشان کنی جان تاریک اوی بفرمود رستم که تا پیشکار یکی جامه افکند بر جوی بار جوان را بران جامعه زرنگار به و آمد بر شهریار به یعنی به بخابوند، خابوندش اینجا خوابیدن به صورت متعدی هم گوه پیلتن سرسوی راه کرد راه افتاد بره پیش کابوس ولی مقداری که راه رفته بود کس آمد پسش زود آگاه کرد که سهراب شد زین جهان فرا. همین از تو تابوت خواهد نکاه میگه رستم وقتی که راه افتاد برفت کمی که رفت پسرش داد کنار آب خوابوندن رفت که خودش نوشتارو بگیره از پشترش آمدن و گفتند که کار تمام شد و سهراب جان داد پدر جست و برزده که سرد باد بنالید و مجگان به هم برنهاد اینم بخش آخرین بخش دردناک که در لحظه مردن هم پدرش بالا سرش نبوده و نام پدر رو میبره و پدر رو میخواد و میمیره پیاده شد از عصب رستم چو باد به جای کله خاک بر سرنها همین گفت زاری نبرده جوان سرفراز و از تخمه پهلوان نبیند نا تو نیز خورشید و ماه نه خود و نه جوشان نه تخت و کلاه کرا آمدین پیش کامد مرا بکشتم جوانی به پیران سرا نبیری جهاندار سام سوار سوی مادر از تخمه نامدار بریدند دو دستم سزاوار ها جز از خاک تیر مبادم نشست چگویت چو آگه شود مادرش چگونه فرستم کسی را برش چگویم چرا کشتمش بیگناه چرا روز کردم بر او بر سیاه پدر من گران مایه پهلوان چگویت مرا باز پور جوان بر این تخمه سام نفرین کنم همه نام من پیر بیدین کنند کدانست که این کودک ارجمند به سال گردد چو سر به بلند به جنگای آیدش رای و سازت سپاه به من برکند روز روشن سیاه ولی خب اینا بعدش مراسم سوگماریه که جالب توجهه میگه بفرمود تا دیبه خسرووان بفرمود تا دیبه به بگسترد بر روی پور جوان همی آرزو گاه و شهر آمدش گاه یعنی تخت شهرم یعنی مملکت میگه مملکت گیری و تخت و تاج آرزو آمدش یکی تنگ تابوت بهر آمدش بهر یعنی نصی از آن دشت بردن تابوت اوی سوی خیمه خیش بنهات روی به پردهسرای سرای آتش اندر زدن از مراسم سوگواری یکی این بوده است که تمام اونچه بازمانده متوفاست همه رو از بین می بردن. به پردهسرای آتش اندر زدند همه لشکرش خاک بر سر زدند همون خیمه دیبه از رنگ رنگ همون تخت و پرمای زین فلنگ بر آتش نهادند و برخاست او همی گفت زاره جهاندار نو همی ریخت خون و